لیلی دیوَم اوزا اوزا سوتامانیجان مرو ویدانا تندروستی به گاورترین بخشش ده زانید هیپوکراتیس کاتیا گله پلی چی برزی پروشی برز ی پروشیدابید اوزا تو انات برز ده وانیا چون که پالن راکانت وزد ده دنه بلهم همیشه به تنیش پالن راکانوا پیویست به حکاری دیکه هه با برهم هنانی بره چی زیاتری اوزا لم بشدرن مایدکم بگا ورترین فاکترکان کوهاد لیدکم بشوی چی کاراو برادی چی زور وزت زیاد کات بدری جای زیاد لس سال دراسه لکولینوم لسرا و انجامدا رژیمی خواردنو خواردنو حناسدان و ورزش چون کاریگری اند سر سر کتند بیت سالان یک پهلوانی مصر بوم بو یاری تیفیسر میس لسال 1969 د پهلوانیتی جهانی د آلمانییا لګل ټیپنه ته وی کوم دا نمائندگی ولاته کوم ده کړه وګورځوانګ لسره اس سی پیګورچیی بر جدیده بردوام لژیر چاودری راستو خوې په زیږی چی تایبتی ټیپکو او راهینه رانه دابوم کړن مای په زیږی چا اند دامه هر بو کومل ګرفتار خوې تندرستي بشم بودرز بو برادې کلهګل زوري ګشته کان شنبودره ووژنم لکوملګی رژاوایګه هر چیز میم نه د خورده وو و نه د چشاو شون تنان چا و قاو خواردنوه و خواردنوه گاز هیچ به های چین للم نبو دا بین می تندرستی که باش بوخم لگرینگ ترینی کاره لپیشی نکانی جیانم دانابو با بروی من دکری خلق با سی جور پولیم بکرین جوری یکم او خلقانن که لسرزم لائنکانی جیانی انده کوتون. با کوششی برداوم وزیرچی او کرد کنو، باشه وازی چی درست دخونو، برای بر پیچی ممارسه ای مش قارظشی کند کنو، کاتی تو او با خویانو خزانه کنیان دادننو، دتوانن جانی چی تندرستو هاوسنگشی. جوری دون. او خلکانن کنان، کس فرق اوت بواری تنها لبواری ایشکانیان داره، ای. آماندی کی سرتیان لجیان دهیو، لودا کرد بیتو برداوم ایشپ کنو هاول بدن، بعضی کار سامان پیکوبنن لراستې جوړه لري مادي ده سرکوتو دهبم بلم ام سرکوت نه لسر حسابی لا نه کان دبی کیجیان یاندبه ګونو مونه رژیم خوړنه نه چشن خویان یان به زور خوړنه وای چا او قاوو او ګټوا رنګمه یجب خونه زور منیشه کات بو ماره سکردنی ورزه شبیت بردوام سکاله او بولدکن لوی کاتیان بو هیچ تک نیه اوانا با غوی وابست به با ایشکانیان و همیشه سرقالن جوری سیم ام جوری خلق اوانن که جیانیان لبازنیشی با تال دا بسردون او کاملیه پیک دینن که روشکانیان با چیشانی جگریک و خوارنوی کپرقاوا دست پیده کنو لگل جولو هاتو چوچونیان با سرکارکانیان جنگکیان برپاده کنو کوتایی روشش دگرینو با مالاوا با خواردنی جمه خواردنی چی خیره با بیرو چاو کردنی به های خورای چی خورا ککا پاشن تا مشای تلفیزیون دکن تا خوده انباته و اوانا بد رجای روش هاو رو هاو دمی جگر و قاون زور کم بیر لی ممارسه ورز شک دکنه و لدوه همو امانش گلی و گازانده لدز بختی رشینده کن لوی و زی چی کم و لاوازیان هایو تندرستیان تواونیه لهمو شوین هندگه لی کولران لی امریکا گیشتونه تا اوی لهمو دو کسی لی امریکا یه چه شام به نخوششکل لنخوششکانی دل دمره لرسه کسیش یه چه شام به شیر پنزه دمره اما نبازوری او کسانه دگرنوا کالبری اوی جیانی راستقینهان بسر برن کهو تونه تا نیو داوی برس کرنوای استی بجوی جیانیانو جارد برناشو گتویه تی اقلی درست للاشی درست دای دبی تا کی چی تندرستی تواب جی لیه چی اگل وانکانم دال جرنال میشانی تندرستی باش پرسیارم لعامده بوان کرد چی لعوا سگ یان پشیله بخیو دکا آسایی هندگ لعامده بوان دستیان برس کرد و ایجی چانگو تی سگم پرسیارم لیکرد چه خواردن یک بسگا کدده دیت گو تی خواردنی تایبت بسگ پرسیم خاورې چې سګه کډکې ده پیاسې بیا ننده غوتی بیګومان ماوي کاچمیر چې توا پرسین چې ګروم می هر خورډ نیکر برداس کې و دې دې کې غوتی پرسی او سګه بای چنده غوتی 500 ډالر پاشان پرسین رژيمي خوراکي روزانه خود څونه ول نه نه بیانې نه خوم ته قهوه یګ نه بای سرقالی مولا سریشکم بپل چند سندوی جگده خون یو عرش هر چیه آده بده خو. لیم پرسی مشقی ورزشی دکی گوتی نخیر با آوین کاتم تم نیه دو پرسیار هرکه رو بروم بر کرده و پیم گوت زگره ده چیشی؟ بپروشی و گوتی بله روزانه نزی که پاکت یک زگره ده چیش پیم گوت با محلویست شیب که نو. تو خواردنی تایبه ده دا دی دا بسگه خواردنی که همون رگازیچی خورا چی پیریستی کت سګه کتدابه لسره اولش سوری دروژانه پیاسو رې رويشتن بکا هیڅ مې دی چې هور کراو یان مې نه دیته همو امانش بو فرزګری لکردنی یتی کچي خود روزانه پاکت یک دیګره ده چشی هیڅ ورزشیګ نا کوي به بیرچاوکړنی به ها خوراچی چی کان همو خورنیګ دخوی خو زور دخوی خو به نرخی لاشت میلیاران دلار او پکې لبرا و استباورو موهایه لپش ساگا کم و دمره با و بزانین دزکانی وزا کامانه یکم دزی وزا کرداری هرز کردنه ایا هیت کار رویده و لدوی خوی چه قولی شش یا هشت تعدده که از جمیری لخو هستاوی تو هشتاش هستد بماندوی تی کردوید اگر او رویده و یه چگل ها کار سر باش هرز نبونی خورا کلگه داده پیاده تیاج ما خواندیکی تاورد خواندیو، دوای او یکسر نست بی. لب را داد، لاش شب بیداری دمنتو، خریدی کرد داری هرسکنی جمع تاوردی که او، لمجد هز و زیبا کاره نوا. همان حالت رود داد، کاتک جما خواندیکی زوری بر تای دخوی. لم کاد د، زیاد لحشتال صديقین رو وجدادتند، بوی ارمتی دانی گذا لکرد داری هرسکدند. هربوی اگر لماوی توارکش میری دهتو د، جمنشیتر نخوی، زیاد لپیز لاشد امرده بیتهای کمی وزد. جوان دزی وزا دل را چه؟ کات یک بار انبار به هر شکل هست بنا آرامیده کی؟ بون مونه پیوز با کار یا پیوندی کاملاً یکاند. بر دوام لبیر کرد داد بیت. لام حالت دا. وزای کارات باشگل وزای جسته یوسوزید واردگر تاکو لکرداری بیر کرد نوکده با کاری بخند. لذوعی اما واه هست که کمو کمول دزی خواه من دو کردنی که زیاد لپیویست کاشش دکی هز بمن دو بون و وزد دکی مادم وزمان من سو تمانی جیان منه پیویست ترکیزی لسر پرسیاری پر سیاری گرینگ لیره دا اویه چان دکره از تی وزه من برس جوری سرچی وزه هن لاشهی، اقلی، سوزداری وزهی لاشهی در باره وزهی لاشهی باز ده هنه سدان و رجمی خوراچی و یکم حناسدان حناسدان یکمین و گرین ترین بر و بر همهنانی وزه چی گوری لاشایی تندرستی لاشا به همان آستی تندرستی او خانانه کپیچن که پیچان هنوان به بیخواردنی هیس خوراچیک بو ماوی هفته یکو بیخواردنوی او بو ماوی چلو هشت کجمیت لجیانده بمینیتوا بلام او پر ریمانو به بی حناسدان تنها پینس خولکا زورگ لخلچی شوازی درستی حناسد لگل اواش که هواي خورایی هیا کسی کمتر لسهیه چی سیکانیان لحناسدان ده دا بکرده ینا پیشتا جخد بکیتا و هر چون بید برنامه چی تندرستی پیرو بکی جخد لحناسدان بکاتا و بر ریگه چی و درست برنامه مشقي كاني اقل و لاشا وگ یوگا و تعمل و کاراتی و ملک کردن هر همیان پیداگری لسر بهیزی حناسدان ده دا کنوا بر رگاه چی باش و درست اندامکانی لاشا بشیوی چی کاراو با اندازه پانزه جاد پتر لرگاه اصایی خواهنده کاتو لن وا دکتر وبر خواهنی خالاتی نوبل لزانستی فرمانی خانکانی فیسیولوجیه دا گتویه تی اکسجین با درزبونی خانه تندرستی ساخ زور پیویسته زوری جانیش زوری خانکانی لاشا دیاری دکن لبر او پیدانی او پر بری اکسجین بلاشا دبه آمان جیه کم دوید تاجیانیشی تندرستی باش و جیو بر ریچی و زبر هم بینید لکاتی قصه کردن لباره هناسدانو پیوسته دو جوری بازو کرد جور یکم هناسدانی قور یا خود خالی کردنو ام شوی هناسدان دبه تو هوای پاگش کردنو خانکانی خوین لهر خلطه کلوانه بوستینه لم هناسدانه دا ام هنگاوانه دنین لنو توا هوا موی جمردن یک تا چوارو هر دو سیکانت پربکل هوا هواکه لسیکانت دا بهیل روا موی جمردن یک تا دا هواکه لده موی بهیواشی بیدروا بموی جمردن یک تا پینج ام مشقه دوبارب کراو بجوره که موی هشت نوی هواکه لسیکانت دا لحر جاری دا زیاتر بکیو لنیوی موی که پیشو دا خالی بکیتوا بونمونه هواکه لماوی جمردن یک تا دوانزا بهیلی توو دانه و کشی با ماوی جماردنی تا شش بید خو اگر گیشتی تا اوی تا جماردنی شانزه هوا کل سیکان دا بیلیتو او خالی کرنوشیان با ماوی جماردنی یک تا هشت بید پیست کاتکا با پلبندیو هیواش زیاد بکی همیشش بیرد بید سنور یگنیا دیالا وی تو بسر خود دادی سپینی جاری دوام او هناس دانهی با برامهنانی و زی للوتا و تاج مردنی چوار خواکل دمو خالید کرو تاج مردنی چوار توا وگ اوی مومک بکجینی توا دا جار ام مشقه دوپاد کرو روزانه روژانه سی جار مشقه تایبه تکانی هناسدانی قولو هناسدان بو برمهنانی وزه دوپاد که بیانی و نیو رو ایواره تاکو کو ام مشقهانه دبنه بشگل جیانی روژانه لوکاته دا تیبینی برزبونوی استی خودکا. لبر اوی تو له هر حالات یک دابی هر دبی هنا دی بوی امکاره بشیوو ریگه چی توا و درست انجام بدو بره چی گوری و زبت از بینه دوام رجمی خواردن آیا هیت کات رجمی چی دیاری کراوی خواردند بره کوپی چی پیرو کردوا بو کم کرنوی یان زیاد کردنی چیشی لشد اگر ولام ببالیا آیا ام رجمه لگل تو دا سرکوتو بوا لی کولاران لزنکوی هر فرد اشکره اینکر صدانو نو پاین نوی رژیم خورا چکن انزم چی زور باشه نبی. بای اوانه با کم کرنوی چشم پیروی هم رژیمان ادکن اصایی پش موایک دگره نو با چشب نراتی کن یان هندگزر بازیاد لو چشش رژیمی خوردنی رژیم بازمان انگلیزی پیده گوته دیت، ایت امو شیا لدو باش پیکاتوا دی اور ایت به مانا بخو یان بمره توکاتک پیروی رژیمی چی دیاری کروی خوراک دکی، هر لوکات دا لاشو اقلد لبیر کرنوای برسی بونده ترسن. هر بویا با رژیمی خورنی که با نمونه با کم کرنوای چیشه، زور است مصر کتوبید لکم کرنوای چیشه ده. هر بویا اوی پیویست با جیاند رژیمی چی خوراچی درسته. مولیر گوتویتی، پیویست بخوین با اوی بجین، نک بجین با اوی بخوین. زور اگلو خلکانهی لوانه محاضره تایبه که کنم دا لسر تندرستی آماده دووندالین زور حزیان لخواردنه وطه ایچی برنار شو باو کسانه دالیم که گوتویتی خوشویستیگ نیه هنده خوشویستی خواردن رازگویانوه ایما همون روشک دانکان من گور بو خو من حل بکنیم اگر بیر من لوه کرده و صدا حفته گوی زوی بری تیل آو پتر لصدا حشته لاشمان آوه برای تو گرین ترین بند لبندکانی رجه می خوارد نکد دبی چی بی؟ بیگو من آو وانیا؟ دبی بزانید سوزه و میوه رجه چی زور آیویان تده منوک خوم لجمی زو، زور میوه ده خوم لگل شربت کل هش زرو، دو سیو پیکات و لگل جمکانده پیویست زلاته هبید کل زور جوری سوزه دروز کرابه با شیوا شوا با جمی اوارش سیستمی جیانی منه پێویستا شێوازێکی تەندروست بۆ خواردن هەڵبژێری بۆ نمونە زۆر خواردنی میوە لە کاتێکدا گەدە پڕ نەبێ و لە دوای خواردنیش لەگەڵ ژەمەکاندا زەلاتە هەبێ هەروە ئەگەر وییستر لە نێوان ژەمەکاندا شتێک بخۆی باشتر وایە سەوز می وە بێ وتەیەکەیە دەڵێ خواردنی سێوێک لە ڕۆژێکدا و سەردانی پزیشک کرد لێ دوور دەخاتەوە بەڵام بەڕاستی پندێکم نبینیوە بڵێ خواردنی پارتچەیەک شکلات ئەو کاریگەریی هەبێت. استف پیوسته تبینی امنیش خور اوکی اس کیوزیم رو به توویدشوی اگر کسا که سکه بری پیوستی شلمنین خوردان باشترینی او شلمن یانش ااو ارزوی خوتنی دیوانی و روانو کمبونهوی ترکیس هاکی وشک بو نووے میوه پیگی و کند خور رو او روجنه برچ زور اب خور بو خورد نووے او چاوریمه که بگیته پلیکین وکی چنکه تنوکی نشانی همیشه کپ یک اول نزیک دست و بیتو به هیواشی بیخویده و سیم مشق ورزشکان زور لخلکی مشق ورزشکان با آزار و مندوبون و کرشبونوی محصول که کن لکات یک دکپیش تا ام مشقانه و با سر بردنی که تیچی خوش و پرلتیش هجمار بکره سیر بو کاتیگی چگل دروانی بانی وانا یکم لسر سیستمی جیان پیگوتم دتوانم همو کاری بکم دیگه لورزش. تناند دوام همین جر کردم کرد لعقمون بیار کم وا، تاکومالوا، ام راکر نشم لبر آو بو، سجید رفته کمان دوام کوتبو. باتش جور بیتند لمش قوارزشکان، پیوسته امانه امانی خوارک. لیشک لیان قوارزشکان دا، گرنجی بتدروستید تندرستی بج دریب ک، لی من در کسانه دناسی سرین زر راده چشن. چونکا بر دوام لب مشق مش قوارزشکان آوده دونو و زړه به خشینه تو ملک رڼا رويشتن له ورزښنه ای بکانم همو پروژه به راه نه انکه نه ساده د سپک ووډه پښتر با سم کړم لپاره شم ممارسې مشق کانی کړشبونو به هیڅ کدی مسول ککامت له اوا رويشتن له شوینهګاو پاشان را کړدنی هواش مشق کیبتيب ک به هیڅ کدی مسول ککانی سکو سنگو هردو دو باسه له سیستم حیجانی روجانه ده بشپ ور رويشتن دابنی کله پنځه خولک زیاتر نبی د پیل رجای چې گشتي دا یان اگر که شو هوا رین ده له شونی چې د خرو ده بیت سود لا امریکایی مشخه ورزشګان ور بګره وګ امریک سولیدان او پاسکل جیجی رو رای خېجوله د کریم مشخه ورزشګان انجام دی اگر له بردهم ټلویزیون یې درته هر کله چېش گرفت چې تندرستي بو به د ډاکټره درباره جوړی مشخه ګونجاوکان بو حالت ته تایبه تو اوش ریارمتی دردل دا چالاچی و زیاد کرنی هیزی برگه گرتنید هر لأمر گوه دست پیبکا گرنجی به تندرستید بدهی به دلنیایی و همو روژک تیبینی برزگونوی آستی وزو خوشگزرانید دکی وزه اقلی که تگ آماندی چی دیاری کراو توید و بتوید به دستی بهینید پروش دوید وزه ایچی زورد لابر همده دیاری کرنی آماند کانو وره برزی بو با دست پیویسته لنوسینی آمانزکان تاو دست پیبکی خود لو دل نیاب که دتوانی ام آمانزانه دست برکی بمشه ویا آستی وزه اقلی برزده بیتو پیویسته ام دل نیابی کارانه تاو مرکیو رو جانه بیان خوینی تاو بمش انجامکه که به دستینانی وزه پیویسته به تواوی بدزده وزه سوزداری پروگرام اقلی بلاشه کنی نمونه یوگا و تعمل و تای چی؟ رګا ګلینا یا بنبوز بو و وزې سازدری د کلوبې ته چون کوماله سودې چې هاو شوی سودکانې ان برنامانه بد از به کني اویج به آرامو حنا سدانې هې واشو هڅ کړن ام خیال کړنی او لا شت بو و او خورو د گل حنا سدکانته مل دکد دکاته ام کارده بیر لکه څېګره که ک خوشد دی لیر ده په تواوی برز بونوه استی وزهی سوزدارید دکی امرو چه تیه خواروه با دسکوتینی برسترین استی وزهی یکم حناس دان روژان سی جار مشغل سر حناس دانی قول خالی بونو بکا تج مرد نید ده لهر جارید ده روژان سی جار مشغل سر رگای حناس دان با برمینانی وزبکا تج مرد نید ده هر جارید ده دو مشقکانی کانی بیانیا. ماسور که کانت گرچه ماوی دو خولک هر لجیگای خود دا، بو ماوی پنس خولک بودجولی. لش وینا کد دا، به هوایشی تاج مردنی بیست ری رويشترم کا. سه جار اجنه کانت بنشته نرآوا. سه جار مشق بو به هسکری ماسور که سگ انجام دا. سه جار پاستام بو به هسکری هر دو بازکو سنگ انجام دا. پیش تپش ما را سکری هر بار نامه ای چی مشق آورزشکان رایش با دکتر کد کی. هر والکرینی آمریکانی مشق آورزشکان کالگوارگی. چون که همه جوره که لسود ورگرتنی ترشخاین روژانه سی زر با ماوی بیست خولک راه نانکه دکره دلیه چگلویانه ورزشیانه دا بجداری بکی که گرینجی به تندرستی ددن بمشه ویا تیبینی بردوام باش بونی تندرستی دکی تو کسانه چیش چاوکه دکی میو دبینی جیعواز لوانه بردوام سکالاله دزنخوشی کندکن دیان ناسی تو لعامانزا ایجابی کنیان و جی سیم نری تکانی خواردن تا که خواردن نیه بو همو کسکان گنجاوگی بو یه پیشت رجیمی چی خواردنی هاوسنگو تایبد بخود دابینی بشیوی کسر جم ماده خورا چکانی که دابی بو امش امری المیانه پیروک که سرطای رجکان هندگ میوپ خو دور بکروا لجم خواردنی چورو قرس بردوام لگر جمکان ده زلاتب خو لکاتی برسیتی نیوان جمکان ده س چوارم، دور که او تنواله او و همیشه که پیگ نزیک نزیگ دستاو دابنه و ما و ماهاش بیخوره و پیجوی تینود بد او بخوره و چون که نشانه او شکبونه و شربه تی میوه پیگیش تو کم بخوره و او زور خواردنه نبخو که رجیه چی زور اویانتی دایه وک سوزو میوه پینجم دوپات کب نوکن روزانه چندزار یک دلنیایی پی خود دوپ من تندرستی که باشم هی و چیزی شیلی وردگرم من بهیزم و مطمانشم بخوم هی من رازی خوم دگرم و لیشی رازیم دور بکوا لهاوریتی کرنی او کسانه پیان دلین دزکانی وزن لاؤ کسانه همیشه سکالا دکن چون که او کسانه ورد در روخین و وزد ددزن هز بر روخان و تیکشکاند للا دکن دوایش آستی خود دبینیتی و لدابزینی چی بردوام دای دا لخوا خراپک وقت دیگره شانو خوبیه قاوه و گرتنی قاوو چاو می اما آنه همین وزد دادزن همیشه پیوندید بکس ایجابی خاوان وزد برزکانو ها بی چون که دب نو وزد نیو کاج میر پیش کاتی تایبتید نیو کاج میر برد لکاتی آسایی تایبتت لخواو هستا بو انجام دانی مشق ورزشی کن اگر خود پارزگاری للاشه خود نکی چه بود دکا بابد سینانی وزا، بم رگاه رو سرکوتونو بختوری بسنور بر دوام لهنگاونان داده بیت همیشهش یادد بیت همو ساته و ها بجی کتا ساته وقتی جیانته با باور و بجی، به امید و بجی، به خوشویستی و بجی با تکوشان و و ریزو به های جیان بسند